بسم الله الرحمن الرحيم بفضل خدا قسمة اول كتاب يعني جزء اول مرحل سالنبيه تعان شد رسلين به جزء دو المبني والمعرب من الافعال والاسماء مبني و بوران شوينو البته قبلنها خاندهيد ولنجا هتمن نقاطي جديد بيان میکنهد المبني من الافعال قسمة اول اول افعال مبنی رو بیان کنید. رکب تل فارس فیل هست. رکب تو چهار فیل هست. اتشار رابحه حبر الغایبه. در امسال گروه اول افعال مازی رو آورده است. و آنکه السلام و رحمت الله. مازی اگر مصنده بی یا به عبارتی دیگر اگر ضمیر رفع متحرک به آن متصل باشه مبری بر سکون میشه مانند رکب تو ببینید با مبری بر چی است سکون است اما اگر ضمیر و و جنب اون بچسبه مبری بر زمه میشه تجار ربحوا و حا آخرین حرفه چیز حرکتی داره پس مبری بر زمه هست همیشه دیگه این سیغه آخرش زمه داره. حبارل غایبو. زمانی که زمیر نچسمند. زمانی که زمیر رفت متحرک مو بود که مبری بر سکون بود. زمانی که زمیر مواب بود. مبری بر زمه بود. و در غیر این دو حالت مبری بر فتح هست. مانند زرابه. بله. زرابه. بله. اما گروه دوور اطع اباک ترزنا السیاب اترک اترکنا الجدال افش السلام او اوفو بالعهد اوفو بالعهد اوفو بالعهد فیل امر هست فیل امر اوفو میشه اوفو میشه نه لا, لا اوفو میشه فیل امر اوفو میشه مدونی چرا بخاطرین که حمزه باب افعال فتحه داره حمزه باب افعال این مسجرش ایفا هست نه وفایا نیست اوفا هست اوفا یو فی ایفا باب افعاله تنها حمزه‌ای که در امر فتحه داره باب افعالش وفا که مجرده اوفا خب. یو افعال آه اون اصل شا ولی من حمزه رو بحث میکنم که حمزه تنها جایی که فتح داره کجاست باب افعال پس اوفو بالعهد اینا همشون عمر بودن در عمر مساله بیشتری آورده بخاطر که حالات مختلفتر و مختلفتری داره میگه امر مبنی بر ساکن هست زمانی که چه باشه صحیح الاخر باشه مانند اطع اطع موتل هست ولی موتلل وسطه آخرش صحیحه آخرین حرفش جه عین هست و به اون چیزی نچسبد و نون جنب به اون نچسبد مانند اطع ترز تر نه اثیاب پس چه زمانی فعل امر مبنی بر سکون هست زمانی که نون جان هم به اون بچسبه مبنی بر چه هست تر نه زه چه داره ملاها ساکین داره دیگه اترو کنل جداد اما زمانی که نون سقیله بیاد مبری برچه هست؟ برفت هست و زمانی که معتلل آخر باشه مبری بر حسفه؟ حرف الله هست و زمانی که به آخرش زمیر چسبیده باشه زمانی که به آخرش چه باشه؟ مبری بر حسف نون هست او اوفو, اوفو مبری برچه ببینید اینجا دقیقه داشته باشید اوفو موتلون آخر هست ولی در اولش مبنی بر حصف عله هست میشه؟ اوفی اوفی, أوفی. در اولین سیغه مبنی بر چه هست؟ حصف حرف عله ولی زمانی که زمیر مصنع یا زمیر واف بیاد اون موقع مبنی بر چه هست؟ مبنی بر حصف نون هست مثل بقیه ام امرها مثل یا تذربانی. اگر امر درست کلی میشه اذریبا این مبری برچه هست مبری باره موتلی که زمیر آخرش موده باشد مبری برچه هست یعنی مصنع و جمع یعنی مصنع و باره در در باره باره امر مزاره مزاره ای که آخرش مونه سقیله باشد یا ما در مزاره در قواعد میگه فقط مضارعی جز مبلی ها هست که نون نصف آخرش هست یا مضارعی که نون یا خفیفه روش اومده است وگرنه مزاره در حالت دیگه از مراب است قسمت سوم دقت کنید لان سوال لان که مبنی هست نون ثقله روش اومده مبلی بر چی است بر فتح است اون صیغای خمسه ای که قبلا خوندیم اونا زمانی که نون ثقله بیاد مبنی بر فتح میشن یعنی یا زربو تزریبو ازربو نزریبو. اینا که نون ساقیل بیاد مبنی بچی میشوند؟ بفته بچی میشوند. شروع کریم جزء مورال هست. جزء مورال هست ولی نون ساقیل که بیاد مبنی میشه؟ بله. نون خاص مبنی. بله مبنی که نون خاصی که هم بیاد اصلا نون تاکید که بیاد مبنی میشه. لاجیدن ن لأ عملی لاجی لعجیدن عملیش لعجیدن نه باز هم مبنی بر چه هست؟ مبنی نید هستم چرا؟ مبنی بر فتح هستم مبنی بر فتح هستم کجایی تو؟ من گفتم اگر نول بر سر فعل مزارگه مبنی بیشه اگر نید چی؟ اگر نید که فرق بطوره؟ ما مغربه؟ خب اینجا اومده؟ بله یه یه بر فتح البناتو یعکل این هم مبنیه اینجا نون سقیله نون تأکید نیومده ولی نون نسو اومده پس مزاره در دو حالت مبنی هست یک زمانی که نون جمع نسوه یعنی دو جمع موننس مبنیان، به اضافه زمانی که نون تأکید بیاد البته یک نکته هایی رو در قواعد نیگه در هر حالت با نون تأکید مجز مبنیهاش نمیدونه مثلا میگه در یزبانی اگر نون سقیله بیاد میشه لیزبانی میگه این فیقه مبری نیست با وجود اومدن نون ثقيله بلکه این مورب است علامت همون نون هست ولی به خاطر تخفیف نونش شده شده است حذف شده است که در قواعد میگه القواعد خاصد المبني من الأفعال هو الماضي والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون الالف هي فعلها مبني يكي ماضي ها مبني ماضي ها امر ها ومضارع بانون تاكيد يا نون المؤنث واسن ها 80 الماضي يبنى على السكون إذا اتصل بضمیر رافع متحرك ماضي مبني بالسكون زمانی که با زمیر رفع متحرک وست یعنی از سیغه زربنه تا آخر مبنی بر سکونه چون زمیر حرکت دارند متحرک هند هشتات اینو که گفتیم مازی مبنی بر سکون هست زمانی که متصل به زمیر رفع متحرک باشد و مبنی بر زمه زمان زمانی که واقع جمع مذکر به اون چسبیده باشد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 او اتصالت به نون و یا زمانی که نون جنه معنیس دران مچسبت بر سکون هست و على الفتح اذا اتصالت به نون و تأکید سقیلتا و و فیل امر مبنی بر فتح هست زمانی کنون نون تأکید سقیله یا خفیفه بران چسبیده باشد مانند اذری بله که مبنی بر فتحه هست و على حرف اذا حرف العلتی اذا کار معتلل آخری و مبنی بر حرف حرف الله هست زمانی که معتلل آخر باشد مانند یدعو که امرش میشه ادعو یرمی امرش میشه ارمی مبنی بر حرف حرف الله است اما همین معتلل آخر اگر بس زمین علف مصنع یا واقع جماعت یا یا مخاطب بچسته اون موقع دیگه مبنی بر حذف حرف الف نیست بلکه مبني بر حذف نون هست که در ادامه میگه میگه او على حذف نون مبني بر حذف نون هست امر اذا اتصلت به الف الاثنين او واو جماعه او یاو مخاطبه زمانی که به امر الف مثنى استیده باشد مانند ازریبا او واو الجماعه یاو الجماعه استیده باشد مانند ازربو یا یا مخاطب مانند ازری اینا مبني بر حذف نون هستند جان، چه موتل باشه چه غیر موتل مثلا ارمی مبنی بر حسف یا هست حرف الا هست ارمیا مبنی بر حسف نون هست بعده 82 نون قائده المبارو یوبنا على الفتح اذا تصالت به نون التوقیدی سقیلتا او خفیفتا مزاره مبنی بر فتحه هست زمانی که وصل شود دران نون تأکید چه سقیله باشد چه خفیفه و على حکول اذا اتصالت به نون و نسوه و مزاره مبنی بر ساکن هست زمانی که نون جمع به با وصل باشد. این این بود درس قسمتی که مبنی ها.